بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله تیبین تاهرین المعصومین لا سيما بقیت الله في العرزين. اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا يوحنا و ورحمه الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام علی جميع انبیاء الله و رسوله و ملائکته اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحين، السلام على علی امیر المؤمنین السلام علی صدیغت شهیده السلام علی الحسن و الحسین، سید شباب اهل الجنه اجمعین السلام و علی ابن الحسین زین العابدین السلام و محمد ابن علی باقر علم نبیین السلام و جعفر ابن محمد الصادق السلام و علی ابن جعفر الکاظم السلام و علی ابن موسی الرضا السلام على محمد ابن علی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 و الليل و النهار و لا الله آخر الاحد مني لزيارتكم السلام على الحسين و علي ابن الحسين و علي اولاد الحسين و علي أصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام انا ادعوكم الى كتاب الله و صنّة نبيه فا این قد نتقد امیتت و البدعتقد احیت فا این تسم و قولی و تتیع و امری الى سبیل الرشاد مستهزرید که موضوع بحث ما تبیین امام حسین علیه السلام و روشنگری آشورای حسینی نسبت به این مطلب که موانع تحقق هدف انبیا چیست چه اموری باعث شد هدف انبیا تحقق نیابد؟ در رابطه با ابی عبدالله و واقعه آشورا چه روشنگری نسبت به این مطلب صورت گرفته و ما به عنوان پیروان ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه میآموزیم رسالت مسئولیت و ای که به عهده ما میآید چیست طبیعتا وقتی سخن از هدف انبیا چه موانعی برای تحققش هست مطرح شد در مرحله اول این سؤال مطرح شود هدف انبیا چه بوده است که موانع نسبت به اون چه بوده است رو ما بررسی کنیم هدف انبیا چه بوده است در یک بیان کلی هدف انبیا انسان ساختن انسان ها آدم شدن افراد بشر اما اینکه انسان ها انسان شوند بشر به اون صفات ارزنده انسانی خودش نائل شود این سه جنبه و سه شعن یا سه جهت براش مطرح میشه یکی در زندگی فردیش یکی در زندگی خانوادگیش یکی هم در نظام اجتماعی و زندگی اجتماعیش شما گاهی به یک فرد برمیخورید میفرمایید که چه انسان رشد یافته اخلاقی ایدئالی من از مجالست با این فرد لذت بردم و آرزو می کنم افراد زیادی در جامعه ما به مانند این فرد باشند. گاهی به یک خانواده برمی خورید همه اعضای خانواده این یک خانواده موفق یک خانواده ایدئاله همه اعضای خانواده به وظائفشون آشنا هستند و میگویید چه خانواده موفقی چه عواملی باعث شد چه شیوه تربیتی در این خانواده اعمال شد که اعضای خانواده چه پدر چه مادر چه برادر و خواهر چه بستگانی که در این مجموعه خانوادگی با هم رفت و آمد و معاشرت دارند، ما ویژگی های ارزنده انسانی رو از آنها میبینیم همچنین نسبت به جامعه اون توقعی را که ما انسانها با به عنوان انسان از یک جامعه بشری داریم که تحت عنوان ادالت اجتماعی مطرح میکنیم عدل را به معنی دقیق کلمه اینجا در نظر می گیریم یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته باشه افراد صورت نگیره تفرید صورت نگیره ظلم و بیحساب و کتابی نباشه حقوق محفوظ باشه هر کسی به حق خودش برسه رابطه انسان با بقیه افراد انسانی در چنین نظام اجتماعی یک رابطه عادله اخلاقی جالب و ارزنده باشه آیا اگر ما فردی را میبینیم که از نظر اخلاقی ایدئال است ارز کردم پسندیدیم افراد دیگری ببینیم که درست نقطه مقابل اون فردند طبیعتن این سوال برای ما مطرح می شود چه باعث شده که اون فرد ایدئال و اخلاقی و ارزنده است اما این فرد نیست تو خانوادم همینطور در مقابل این خانواده موفقی یه خانواده ای را می بینیم که اون موفقیتی را که خانواده نخست داره اینا ندارن چی شده عامل چیه دنبالش بریم تو نظام اجتماعی هم این بحث مطرح میشه. چرا جوامع بشری یه زمانی مشکل جهل داشتن مثل دنیای امروز ما، علم، دانش، صنعت، تکنولوژی، دانشگاه ها،, ها، اندیشمندان، متفکرین، علما، حکما، فلسفه بی این تعداد نبودن، بشر هم یک زندگی شاید ابتدایی داشت و اون جامعه ایدئالی را که ما توقع داریم و آرزو می کردیم نمی دیدیم. ولی آیا در شرایط امروزه دنیا که این همه علم و صنعت و این امکانات برای بشر فراهم شده بازم شما می تونی در یک گوشه ای از عالم وارد یک جامعه بشید. بگید از هر نظری این جامعه ایدئال است؟ یا اگر من مثال زدم یه خانواده اگر پدر موفق است مادر موفق نباشه مادر سالم و موفقه پدر موفق نباشه پدر و مادر سالم و موفقن اعضای دیگه خانواده بچه ها موفق نباشند میگیم کجای کار میلنگیده یه که مشکلاتی پیدا شده آیا در دین ادعا نشده؟ خدا پیغمبران را فرستاده نگفتند که ما آمدیم یه جامعه ایدعالی براتون درست کنیم ما افراد موفق در طول تاریخ کم و بیشی دیده و میبینیم در سایه تعالیم وحی و آموزش دقیق دینی افراد ساخته شده در حد بسیار عالی و رشد یافته که حقیقتا انسان وقتی به اینها برمیخوره حتی گاهی انگشت حیرت به دندان میگیرد که چه مقاماتی دارند و قبطه می خورد و آرزو میکند که ای کاش ماها هم می توانستیم مثل اینها شویم خانواده هم کم و بیش همچنین ولی یک نظام اجتماعی دقیق همه جانبه کاملی را خب اینجا در دستبندی اولیه ارز کردم یه عده میگن شما از دین توقع چنین جامعه ایدئالی را نداشته باشید چون مخالف دینن مخالف وحین مخالف حقایق ماوراء ماده و صطره عالم معنا بر عالم ملک اینو یه توضیحی ارز کنم چون ممکنه سوال برای بعضیا مطرح بشه. من در زندگی شخصی خودم به عنوان یک فرد چه بنده چه شما فرقی نمیکن. ببینید یه جنبه ملکی وجود داریم همین گوشت و پوست و استخان که جنبه ملکی وجود من و شما با جنبه ملکی وجود گاب و گوسفند در ذات فرقی نداره ذات وجود مادی گاب و گوسفند همین گوشت و پوست و استخانه. همین سیتوپلاسم و پروتوپلاسمه همین عناصر مادی در این عالم ماده است حالا رو ترکیبات شیمیایی کمی بالا پایین یه تفاوتاتی داشته باشه ذات میشه ماده ذات میشه عالم ملک اما یک جنبه دیگر وجودی در بنده و شما به عنوان انسان هست که تفکر صورت میگه، تعقل به وسیله او صورت میگیره بررسی امور میکنه سابق سنگین میکنه کارها رو میپذیره رد میکنه دلیل پذیرش رو ارائه میده دلیل رد کردن و مطرح میکنه اون جنبه ماوراء ملک بدنی است که به تعبیر قرآنی و اشعار عرفانی عرفا که از قرآن گرفته جنبه ملکوتی وجود انسانه مرغ باق ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفصی ساختن از بدنم این جنبه ملکوتی وجود من و شما قدرت دارد توان دارد چنان سیتره بر این ملک وجود من پیدا کند که تمام جنبه ملکی وجود را ابزاری در اختیار بگیرد مثلا الان زبان به عنوان یک شیء مادی دستان بنده به عنوان گوشت و پوست و استخوان در اختیار اون قدرت ملکوتی وجود من است زبان به ای به اراده من حرکت کند که مطالبی که بنده الان مورد نظرمه به شما تحویل بدم به این شکل حرکت کند شکل دیگری نه اگر حرکات دست من با نوشتن روی تخته یا با نوشتن روی کاغذ یا یه نحوه خاصی برای القای مطلب لازمه اون قدرت اینو در اختیار خودش میگیره و وادار به این شکل حرکت میکنه اینو میگن سیتره سیتره قلبه قدرت داشتن تعالی داشتن صطره قدرت ملکوتی وجود من بر جنبه ملکی وجود من. حالا اگر من این جنبه ملاکوتیم رو ضعیف کردم. قدرت بهش ندادم، نذاشتم رشد کنه. این جنبه ملکی و یا جنبه های مشترک حیوانی وجود من، غلبه پیدا کند بر اون جنبه ملکوتی من جنبه ملکوتی من ابزار شود در خدمت جنبه ملکی این انسان بیچار است زمانی من فرد کاملم یا در مسیر کمالم که بعد ملکوتی وجود من سیتره بر ملک بعد ملکی وجود من پیدا کنه یه بحث دقیق و عمیق فلسفی و عرفانی انسان است که باید در جای خودش مطرح بشه عین این بحث در نظام اجتماعی مطرحه ما یک پیکره فیزیکی جامعه داریم یک سیطره متافیزیکی برای جامعه اگر بحث وحی مطرح میکنیم آیا ماوراء ماده متافیزیک و اون حقایق ملکوتی برای نظام اجتماعی هم میتونه مطرح بشه سیتره پیدا کند همینطوری که الان تا این قدرت نفس یا روح که ملکوتی است در وجود منه دست رو دست نگه می داره چشم رو چشم نگه می داره زبان رو زبان نگه می داره ولی این قدرت ملکوتی از وجود من جدا میشه، اینا همه متلاشی میشه. دیگه دست با عنوانی یه دستی که اون کاری که بناسب بکنه نمی بکنه دیگه چشم با عنوانی یک عضوی که قراره در خدمت این وجود برای دیدن باشه دیگه معنا پیدا نمیکنه. اون قدرت اینا رو در کنار هم نگه می دارد، مدیریت می کند سیطره دارد و هر عضوی رو در جای خودش به وظائفش نظام اجتماعی در نگرش الهیون اینگونه است میگن اگر ما وحی را مطرح می کنیم، اون نظر دسته اول که میگن اصلا وحی نه خدا و معنویت نه این در واقع مثل این است که بگوییم یک انسان فردی بعد ملکوتی نمیخواهد اینو در بحث بروندینی شبهای بعد اثبات خواهم کرد فقط یه جرقه ای زدم بهش توجه بفرمایید تا وارد بحثش بشیم همینطوری که ارزش وجودی من و شما به عنوان یک فرد زمانی تعالی پیدا می کند که اون بعد ملکوتی وجود ما تعالی بیابد و این را در اختیار بگیرد در بعد اجتماعی ما هم سیتره ملکوت بر ملک وقتی مطرح می شود وحی آمده است این را به ما بیاموزد اما از اون جایی که رابطه ما انسانها با وحی منوط به شناخت و معرفت ما از وحی است ما چه معرفتی نسبت به وحی داریم؟ به اقتضای اون معرفت توقع داریم و به اقتضای اون توقع اقدام عملی داریم اگر معرفت من نسبت به وحی این باشد که وحی قبول ولی برای نظام اجتماعی شما و حرکات جمعیتون هیچ کاری نمی بکند پس توقع من بر مبنای این معرفت از وحی چیست؟ من فقط وحی رو برای شعون شخصی و فردی و رابطه اقتصاسی خودم با خدا میخوام نظام اقتصادی به وحی کاری ندارم نظام سیاسی به وحی کاری ندارم نظام اجتماعی و نظام های گوناگون تربیت جوامه رو با وحی کاری ندارم چرا کاری ندارم؟ چون توقعی ندارم چرا توقع ندارم؟ چون در مقام معرفت معرفت من نسبت به وحی اینه که وحی نمیتونه کاری بکنم این از صدر اسلام این نظرها وجود داشته که من با مدارک بعد از ورود به این بحث که به اونجا رسیدم اشاره خواهم کرد امروزم به شکل خیلی گسترده در میان مذهبی ها و معتقدین به وحی این تفکر وجود دارد خب حالا ما به عنوان انسانی که جزء دسته دومیم دسته اول نیستیم که میگیم وک نه حقایق ما برای ماده نه خدا نه. ما خدا رو قبول کردیم ما وحی رو قبول کردیم ولی با دلائل بسیار مفصل و قانع کننده برای عقل که اگر عزیزان جوانی باشند که اینجا براشون سوال مطرحه شماها به چه دلیل خدا را قبول کردید شماها به چه دلیل وحی رو قبول کردید اون بحث جداگانه ای داره باید بحث کرد جوانم حق داره این سوالو بکنه بحث میکنیم دلایل مفصلی که گفته شده ولی از اینجا به بعد الان بحث ماست از اینجا به بعد بحث ما چی بود وقتی وحیو قبول کردیم و گفتیم انبیا آمده ان بر مبنای وحیی که از طرف خدا به انبیا میشه ماها را به تعالی برسانند این هدف انبیا چرا تحقق نیافته ما داریم اینو بحث میکنیم یعنی کسانی که وحی را قبول کردن ولی چرا وحی تحقق نیافته رو دارن بررسی میکنن خب اینجا میگیم یکی از دلائل تحقق نیافتن اهداف انبیا اختلاف نظر پیروان مکتب انبیا معتقدین به وحی نسبت به کارایی وحی خود این یه مشکله باید این مشکل رو حل کنیم اگر بند دانشجوی درس فیزیک شما سر کلاستون باشم خانم هم دانشجوی دیگر درس فیزیک شمای استاد فیزیک سر کلاستون باشه اول بین من و اون خانم یا اون آقا به عنوان دانشوی دیگر اختلاف اساسی فکری معرفتی شناختی وجود دارد تحت این عنوان که اگر شما موضوع ایکس رو در فیزیک میخوای این استاد نمیتونه بدیاد بده ولی حضرت علی میفرمایید این استاد موضوع ایکس در فیزیک هم میتونه درس بده خود این اختلاف بین من و شما باعث میشه نحوه کلاس رفتن ما و نحوه ارتباط ما با استاد فیزیک تفاوت پیدا کنیم الان گروه هایی هستند قلم به دست دارند سایت های بسیار قوی و امکانات بسیار گسترده در اختیارشون در جامعه بشری در سطح اینترنت و ارتباطات کلی جهانی و سایت ها اصرار می‌ورزند وحی به درد نظام اجتماعی شما نمی‌خورد و خیلی از افرادی که نمازم هم می‌خوانند میگیرند برای امام حسین ازاداریم هم می‌کنند یا دچار تردید و تزلزل فکری شده اند یا پذیرفته اند. ای پس ما توقع جامعه عادله را از وحی نداشته باشیم بریم سراغ مکاتب دیگر و نظام های فکری دیگر خب این یک اختلاف اندیشه است بسیار خوب آیا باید حل بشه یا نه و ما با عنوان یک مسلمان مبذفه به بررسی نسبت به این مطلب هستیم یا نیستیم. خب راه پیدا کردن جواب منطقی و قانع کننده برای درون خود ما به قول حافظ درن درون من خست دل ندانم چیست که من خموشم و او در فقان و در قوغاست این غوغای درونی من کدوما راس میگن واقعا چیه؟ آیا واقعا این همه انبیا از طرف خدا اومدن؟ این همه ارسال رسول صورت گرفته، این کتابهای آسمانی رو که ذات اقدس الهی مقرر کرده برای هدایت انسانها بیاد و بعدم ادعا کرده توی این کتابا من جمله در رأسش قرآن کریم سعادت مربوط به هدایت ماست اگه بناس شما یک زندگی ایدئال پیدا کنید ان هاذ القران یهدی للتی هي اقوام پس اینا چیه اینا افسانه است یا چرا این حرفا زده شده ما دو سبک منطقی برای پیدا کردن جواب قانع کننده نسبت به درون خودمون اول اینجا یک هوشیاری را یک تلنگری را یک تذکری را تقاضا دارم از بنده دقیق بشنوید و اون این که برادر و خواهرم به ویژه جوون عزیز ما انسانیم یه حکیمی سخن بسیار قشنگی داره میگه حیوانات چراگرن انسان ها چراگو حیوانات میخوان به چرن سیر بشن چهار تا گاب و و توی بیابونی که خوبی اونجه داره و آب خوبی داره راها کن قشنگ بخوره و بنوشه سیر بشه و بخابه دیگه قانه دیگه هیچ دردی نداره ولی من تو انسان انسانیم دقدقی انسانی داریم ما چراگر نیستیم ما چراگو هستیم چرا؟ چرا؟ به چه دلیل؟ بر چه مبنا؟ دلیلتون چیه؟ قرآن کریم تصریح میکنه این مطلب رو یک میگه پبشر عباد اللذین یستمعون القول فیتبعون احسنه بشارت باد بر اون دسته از انسان ها اقوال را گوش میدن سخنان رو بررسی میکنن بهترینش رو انتخاب میکنن خب حالا وقتی میخوان اقوال و گوش کردن بهترین اون انتخاب کنن ملاک انتخاب بهترین چیه قران کریم راه نشون میده هاتو تو برهانکم امکنتم صادقین برهانتونو بیارید دلیلتون ارائه بدید ببینیم دلیل شما چیه این تلنگر بنده در اینجا این جوان عزیز خواهرم برادرم چقدر گوش کردید به حرفای دو طرف چقدر برهانی برخورد کردید و چقدر احساسی حیجانی غیر منطقی برخورد کردید به من جواب ندید به وجدان خودتون جواب بدید و این دهه با امام حسین خلوت کنید به خودتون جواب بدید. آقا اگر این اشکالات رو کردند من رفتم جوابشم بپرسم؟ آیا بزرگان اندیشمندان در طول تاریخ اینجور اشکالات براشون مطرح نشده بوده؟ جواب ندادند خب چی گفتن؟ اگر فردای قیامت، اون نویسنده ای که شب تا صبح بیدار نشسته این سایت رو رفته اون سایت رو رفته این اشکال خونده اون اشکال خونده منابع رو زیر روی کرده با خون دل مقاله و کتاب نوشته عرضه کرده این جواب اشکال شما حاضر نشدی بخوانی ببینی چی جوابشه جواب خدا رو چی میگی فردا میگی آقا این طرف اشکال کرد خب بله او اشکال کرده حالا او از دو حالت خارج نیست یا مقرز است بر مبنای غرزورزین کارار کرده یا نه تفکرش اینه اینجوری شناخته خیلی خب تو هم انسانی بیا بررسی کن ببین او چی میگه این چی میگه حالا ما میخواییم بررسی کنیم موقع بررسی کرد من همین امروز صبح تو دانشگاه جوون عزیزی اومد گفت من دیشب تو حسینی ارشاد پای صحبت شما بودم منقلب شدم آقا میشه من رشته ما کنم بیام تو رشته شما گفتم نه شما فعلا رشتهاتو ادامه بده گفت سیر مطالعاتی میخوام گفتم ببینید من از شما دانشگاه با اینجوری میپرسم میگم آقا رشتت چیه مثلا میگه که برقه میگم چند واحد گرفتی این ترم میگه 18 تا می‌گم نمیشه 16 تا بگیرید دو تا رو بذاری برای خدا به اندازه دو واحد هر ترم همونطوری که واحد ها رو شما دانشجوی برقی باید بکوب درس بخونی دانشجوی عمرانی باید بکوب درس بخونی دانشجوی فلسفی باید بکوب درس بخونی آقا این ترم به اندازه دو واحد همونجوری برای خدا کار کن اونم مطالعه به چه صورت خدا رحمت کنه استاد ما رو مرهم استاد متحریم ما میفرمود آبکش تو آب نباشی داد آب. آبکش تو آب پره میارید بیرون هیچی توش نیست کتاب دارم می خونم آقا فهمیدم خب بگو چی گفت نمی اینجور این کتاب خوندن که فایده نداره کتاب رو زیر نظر اهل فن بگیر بخون بعد بیا بحث کن بعد سوال کن بعد ببین مشکل حل میشه یا نمیشه خب حالا ما اگر بناس بیایم بررسی بکنیم نسبت به این اشکال وحی را قبول کردم ولی وحی برای نظام اجتماعی من کاری نمیتونه بکنه دسته دوم وحی همونگونه که سیطره ملکوتی فرد بر جنبه ملکی فرد را راه نشون داده و اگر پذیرفتی عمل کردی میشی یک رجل الهی میشی سلمان فارسی میشی مالک اشتر میشی اویس قرنی میشی جناب فزه که یک شخصیت ای مثل مرهوم آیت الله کمپانی حساب شده حرف میزند بگوید متاب روی از در او بهیس زن که مثل وجود را فزه او تلا کند اگه این فرد تونسته به این مقام برسه وحی راه غلبه و سیطره بعد ملکوتی اجتماعی بر بود ملکیشم ارائه کرده دلیل چیه؟ از کجا میگید؟ خب منطق میگه دو راه وجود داره درون دینی برون دینی خب ما درون دینی چون وحی قبول کردیم حالا میایم تو درون دینی داریم بحث میکنیم سومین شبی است که داریم تو بحث درون دینی بحث میکنیم اولین منبع وحیانی برای من و شما که مسلمونی و قرآن رو به عنوان وحی قبول کردیم حالا درون هم شام براتون بحث می‌کنم حوصله کنیم وقت بذاریم بریم جلو اولین منبعی که به عنوان درون دینی بحث‌ها رو برای ما مطرح می‌کنه قرآن کریمه بعدش روایات معصومین علیهم السلام در دو شب گذشته ما با توجه به قرآن کریم با اون آیاتی که خوندم که نمیخوام تکرار کنم اینجا رسیدیم قرآن میگه فلاح من میتونم براتون ایجاد کنم که شما جزء مفلحین باشید فوز میتونم برای شما ایجاد کنم شما جزء فائزین باشید من میتونم شما رو به یک درجه عالیاتی برسونم شما جز اعلون باشید اون آلیا بشید اما لازمش چیه؟ همه اینا یک قیدی گذشته اگه میخوای رستگار بشی، باید مؤمن بشی، قد افلحل مؤمنون اگر میخواید جز اعلون باشید شما انتمول اعلون انکنتم مؤمنین. اگر میخواید فائز بشید باید مؤمن بشید اینو بحث کردیم خب مؤمن کی از نظر قرآن گفت مطیع خدا و رسول بشه اگر انسانی ادعا کرد وحی و قبول دارم، ولی مطیع خدا و رسول نشد این انسان مؤمن نیست مؤمن نباشه رستگار نیست قرآن کریم هیچ جا نگفته اگر شما صرف این که گفتید من قبول دارم و مسلمانم رستگار میشید بلکه سرزنش میکند لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتنند الله ان تقولوا الله مالات. چه گناه بزرگی است که شماها حرف بزنید ولی عمل نکنید تو پرانتز بگم رفتاری جامعه اسلامی در طول تاریخ تو اکثریت حرف عمل نیست خب نتیجه نمیگیره قران میگه قد افلح مؤمنون مؤمن باید راستگو مؤمن راستکار میشه مؤمن کیه خب باید موتی باشه موتی خدا و رسول خب حالا اینجا سوال مطرح میشه موتی چی میگه موتی امر و نهی اینو قرآن کریم به تعابیر مختلفی بیان کرده ولی ببینید همونم باز اختلاف فکری چجوری میگه حالا من ادامه بحث شبهای قبلو که میخوام از قرآن استناد کنم سوره مبارکه احزاب آیه سی و و ما کان لی ولا مؤمنه هیچ مؤمن و مؤمنه ای را نرسد یعنی چی؟ حالا میخوای مرد مؤمن باش میخوای زن مؤمن باش فرقی نمیکنه. کنه مؤمن هم گفتیم تا مؤمن نباشید رستگار نیستید حالا مؤمن اگر قرار مؤمن باشه تا رستگار بشه حالا چو در نظام فردی چه خانوادگی چه اجتماعی و ما کانل مؤمنن ولا مؤمنه که چی؟ اذا وقتی که الله و رسوله حکمی داد غذاوتی کرد نظریه‌ای داد که اینا رو بحث می‌کنم یعنی چی کی؟, کی خدا و رسولش خدای حکم داد خدای قضاوت کرد خدای یک مبنایی رو برای ما مشخص کرد و رسوله رسولش برای ما معین کرد امرا نسبت به یه امری نسبت به یه قضیهی ای ایکون لحمل الخیره من امره ام اختیاری این که بخواد نسبت به اون امری که خدا و پیغمبر روش نظر داده اختیاری این که بخواد تغییرش بهشی یه جوری دیگه بکنه نداره اجازه یه مثال ارز کنم البته قابل مقایسه نیست، ولی برای تقریب ذهن ارزم کنم. آقا بنده همون مثالی که هر شبم ازش استفاده میکنم بنده که سالت جسمی دارم، به پزشک مراجعه می کنم. خود من پزشکی هیچی بلد نیستم. این آقا پزشک هازق دقیق زحمت کشیده استخون خورد کرده این رشته است، او حقدار نظر بده، حکم میکنه شما اینو باید بخوری؟ اینو نباید بخوری؟ حالا من سر سفره دارم خلاف اونی که پزشک به من دستور داده عمل میکنم ایگران به من میگن غذای پزشک چی بود غذا به خوردنی نه غذا به معنی حکم قضاوت نظر دادن غذای پزشک چی بود حکم پزشک چی بود میگم اون بود میگه پس چرا شما عمل نمیکنید شما اختیار نداری در مقابل دستور پزشک حالا البته نسبت به پزشک قران میگه اگه وحی یا قبول دارید مؤمن رست داره مؤمن کیه و ما کانه ل ولا مؤمنه اذا غزا الله و رسوله ای امرن ای یکون له مول من امرهم شما در مقابل خدا و رسول حق اظهار نظر ندارید آقا این دکتاتوریه این قلدوریه اگر در مقابل اون پزشک همه اغلای عالم به من میگن چرا حرف پزشک و گوش نمی کنید؟ چرا غذای پزشک را نمیپذیری تو یه آدم خودخواهی یه آدم شکمپرستی یه آدم بی ای سر سفره غذا قدرت نداری تشخیص اهل فن را بپذیری اینو میگن قلدری پزشک یا میگن زیر بار اندیشه درست رفتن اگر وحی را قبول داریم از خدا بالاتر برای نظر دادن چه دارید که میگید قلدری خدا از خدا مظلومترم داریم؟ در مقابل پزشک تسلیم باش و درسته اقلا قبول میکنن در مقابل استادت برای اینکه بخوای چیزی یاد بگیری تسلیم باش این قلدریه در مقابل یه مهندس ساختمون اومده میخواد یه همچنو سالونی بسازه آقا این دیوار درست نیست باید دیوارو عوض کنیم آقا مگر قلدریه نه ما دموکراسی برقرار می‌کنیم بابا اینجا صاحب نظر باید نظر بده حالا دموکراسی ما 500 نفر تو این سالونیم یک نفر صاحب نظر حق نظر داره او مهندس دقیق عمیزیش همه جزئیات ساختمون رو می‌دونه ما 500 نفر هیچی از ساختمون بلد نیستیم آقا رأی را بگیریم ما 500 تا می‌گیم ستون نسبانی باشه که مهندس میگه مهندس یه نفره میگه ستون اون باشه طبق دموکراسی حق با ماست ولی واقعیت اینه واقعیت اینه آقا این یکی خدا هیچی رو با خدا نمیتونی مقایسه بکنی. اگه وحی یا پذیرفتین آقا بشر به این شناخت برسه دیگه بس بعد از غرنها دوری از مکتب قرآن دوری از وحی اینقدر سراغ ایکس و اگرگ رفتیم اینقدر سراغ مکاتب شرقی و غربی رفتیم بابا بریم سراغ قرآن ببینیم خدا چی گفته و ما کانه لَمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَةْ اِذَا قَزَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ اما بعدش چی میگه؟ و من گای وقتای مثال اینجوری میزنم میگم فرض کنید بندی اینجا نشستم سه نفر این پشت سر نشستن هی hey به من چاقو میزنن من هی hey اینجوری میکنم شما اون سه نفر رو نمی بینید فقط من نمی بینید اینجوری میگه چیه میگه مخواه خید دارم چاقو میخورم آدم وقتی یه کمی با قرآن کار کنه بعد بیاد اندیشه های رائج جامعه را که نسل جوان چجور دارن به طرف خودشون میبرن دقت کنه میگه وای برما این جای فریاد. به این قرآن بعدش چی میگه ومن یعسل لاحه و رسوله قبلشی بود مومنید مومن را نسزد، زد. این نیست. که چی؟ وقتی خدا حکم کرده؟ رسولش حک کرده؟ دیگه بگه پس اختیار من چی؟ آقا صحبت قلدری نیست. صحبت حق سالاری است. حق سالاری چیه؟ خدا گفته ربا حرامه. حالا نظام اقتصادی کل جامعه بشری بگه روا درست مطمئن باشید یه روز با سر به زمین میخورن چون با اونی که خدا گفته نمیشه در افتاد خدا گفته مثلا آقا مبنای تشکل خانواده باید بر مبنای جعل بینکم مودتن و رحمه این یه قضای الهیه خب ما احتیاج به همسر داریم احتیاج به تشکل خانواده داریم اولین پایه اجتماعی ما میشه خانواده خدا میگه مبنای زندگی خانوادگی که میخواین خانواده باشه چیه؟ جعله بینکم مبدتن و رحمت مبدت و رحمت نمیخوام بحث کنم یعنی چی ولی اشاره میکنم ما مبدت و رحمت و مبنای تشکل خانواده ندیم غریزه جنسی معامل باشه ثروت عامل باشه شهرت عامل باشه زیبایی قیافه عامل باشه احساسات زودگذر عامل باشه نتیجه چه میشه بالا رفتن آمار طلاق بیچاره کننده تشکل خانواده ها ویلان شدن بچه ها تو خانواده ها ما دانشجو بودیم چل سال قبل دکتر ناصر الدین صاحب زبانی روانشناس معروفی بود تو رادوان برنامه های تربیتی داشت، کتابشان تو دانشگاه تدریس می شود. من اون زمان تو کتاب ایشون کمی کار میکردم یادم یک فصلی داشت، یتیمان پدر مادردار، یه بابی بود تو کتاب روانشناسی ایشون، یتیمان پدر مادردار، میگو بعضی یتیما اینجوری نیست که پدر مادرشون از دنیا رفته باشن پدرم دارن مادرم دارن ولی مثل خانواده یه کسان پدر و مادر ندارن نه پدر میدونه وزیفش چیه نه مادر میدونه وزیفش چیه مبنا شده شکم مبنا شده شهوت مبنا شده غریزه جنسی مبنا شده ثروت یکی از متدینین مشهور این تهران که بنده روش حساب میکنم ازش پرسیدم که چرا آغازادتون ازدواج نمیکنن؟ درد نیست آقا؟ به من گفت فلانی خانمم زن زده به یه خانواده مشهوره به مذهب در این تهران سرشناس دینی که دختر خانم شما رو مثلا شوهر میدید من برای پسرم بیام گفته ببخشید شما مردهاتون رو کجا دفن میکنید؟ گفتم گفتن این چه سوالیه من نمیدونم؟ گفت ببینیم پرستیج خانوادگی شما؟ نسبت به قبر و انواد اگه قبرستان معمولیه در شعن ما نیست گفتم عجب جاهلیت صدر اسلام ما خونده بودیم که میرفتن قبرارم میشموردن میگفتن قبیله ما اینقدر مردم داره قبیله ما از قبیله شما بالاتره ما اینقدر قبرم داریم حالا تشک... شکل قبرم مطرحه آقا اونی که خدا قرار داده چیه؟ جعل بینکم مبدتن و رحمت چه میشه؟ من اینو از مرحوم استاد علامه جعفری شنیدم خب علامه جعفری خدایاش بیامرزه تبریزی بود فرمودن من در تبریزی خانواده‌ای رو میشناسم اینا خیلی موفقن بازاری بازاریای موفق، عطه‌باشون اطبای موفق، مهندسیشون مهندسین موفق آدمای عجیب و غریبی من تحقیق کردم چیه خب از یکی از اینا که مقداری خودشم اهل وقیه بود پرسیدم با ما همه مدیون یه مادر بزرگ چطور گفت جد ما نقل کرد مثلا فرض کنید 120 سال قبل 130 سال قبل من ازدواج کردم خب خیلی هم سروت بودم خواستم پیش زنم جس بگیرم رفتم زمستان یه هندونه دوتو تومن خریدم تو تبریز 120 سال قبل زمستان یه هندونه دوتو من اون زمان دیگه اوج ایسار این همسر برای همسرشه بردم به خانمم بگم چقدر دوستت دارم برای چی کار کردم همسرم چی گفت گفت دست درد نکن ممنونم معلومه خیلی منو دوست داری که تو این زمستان رفتی هندونه برام تهیه کردی ولی میشه یه خواهش کنم چیه اینو ورپس بر پس بده ما حالا یه هندونه زمستان نخوریم که مشکل نمیشه ولی با این 2 میوه زمستان الان میتونه یه وانث بخری اون مقداری که ما احتیاج داریم ما میخوریم بقیه رو میبریم میدیم فقرا اونان بخورن این بهتر نیست خب این زن زندگی ما رو عوض کرد مبنای زندگی میشه چی ش اخلاق میشه معنویت میشه اونی که خدا قرار داده آیا اینجوری میشه خانواده رو اصلاح کرد؟ یا منم که ببین میتونم هندونه برات بخرم جهان امروز ما از وحی جدا شده زندگی اینجوری شده و آیه چی میگه؟ و من الله اونی که معصیت میکنه خدا را حکم خدا رو میزه کنار و او حکم رسولش رو گذاش کنار نمیره ببینه خدا چی گفته پیغمبر چی گفته فقط زل زلال مبینا فقط قطعا حتما محققا زل زلالا مبینا چه زلالتی براشون و چه گمراهی آشکاری براشون خواهد شد خب این یه آیه اما همینجا اومدن یه حرف دیگه زدن. چون جوان ممکنه با این حرفا برخورد کنه. اینم بلا بنده از آیات دیگه چی گفتن؟ میگن که ما قبول داریم. باید قضای خدا را بپذیریم. حکم خدا را بپذیریم. من راجع به حکم و قضا یه توضیحی ارزو کنم. بعد وارد اون اشکال و جواب بشم. حکم که حکم حکم میکنه. حاکم حکم میده غازی غذاوت میکنه میگه غذا، غذاوت کرد یعنی یه حکمی رو داد این یعنی چی؟ مستکم، مخکم، پا این از همین ریشه است میگن همین جوری که شما الان این آجرها، سیمان گچ در حالت عادی چی بود؟ پخش و پلا بود شما اگه بخواید یه دیوار محکم پا بر بشه باید اینا رو یه جوری کنار هم قرار بدید که امکان متش... متلاشی شدنش نباشه اینا محکم همو بگیره بتونه یه پایهی باشه که سخف و نگه داره در مسائل حقوقی قانونی قراردادی اعتباریات و در مسائل تجوینی و واقعیات تو هر دو حالا من تو مسائل حقوقی قراردادی دارم و عرض می کنم. شما یه موضوع دارید یه محمول و یه حکمی میخواید اینجا بیارید مثلا فرض کنید میگم آب این یه موضوعه خوردن یه محموله حالا حکم آب خورده شود آب خورده نشود شود و نشود میشه چی میشه حکم رابطه بین آب و خوردن تا زمانی که حکم روش ندادید پخشه گره نخورده آب یه موضوع برای خودش خوردن یا نخوردن یه موضوع دیگهای برای خودش ولی اگر شما گفتید آب خورده شود یعنی قضاوت کردید حکم دادید حکم دادید یعنی چی؟ یعنی بین آب و خوردن گره زدی این باید اینجوری باشه حالا اگر این حکم واقعا حکم درست باشه این گره درسته. اگه حکم غلط باشه این گره گره غلطه مثلا اونجایی که قرار نیست آب خورده بشه شما میگید آب خورده شود گره زدید چیزی رو به هم دیگه که ایکاش گره نمیزدید مثلا بنده یه کسالتی دارم اگه بناس آب بخورم فوری میمیرم شما میگید آب خورده شود این حکم حکم باطله باعث بیچارگی من میشه اما اگر من یه کسالتی دارم این آب رو بخورم کسالتم برطرف میشه شما حکم میدید قضاوت میکنید نظر میدید میگید آب باید خورده شود چه کسی احاطه بر کل عالم داره که قزای او حکم او. پیوند درست در همه امور عالم باشه غیر از خدا حالا اجازه بدی اینو چی گفتن قرآن چی میگه اومدن گفتن این قضایی که اینجا گفته ما کانل لی مؤمنن ولا اذا غذا الله و رسوله ایکون لهم الخیره این حکم و قضا در امور شخصیه در امور عمومی نیست اینن نوشتن من چون بنا ندارم اسم ببرم ولی حالا مطالب رو باید نوشته این عبارات رو باید براتون میخونم مدارک هم اسمی برم ولی دیگه اسم افراد رو نمیبرم آقا یک عزیز من از کجای آیه در اومد مختص خانواده است یا مختص فرده از کجا در اومد اگر من قرار یک متنی رو معنی کنم زوابط اون زبان و زوابت متن رو نباید رعایت کنم در زبان عربی فارسی هم همین دوره در قرآن کریم برای تفسیرش در روایات معصومین علیهم السلام برای درایتش اینو انایت بکنید اگر عبارتی قید نداشت از نظر اصطلاح عربی چیه مطلقه اگر امری مطلق نبود باید قید داشته باشه غید یا لفظیست یا مقامیست یا مکانیست قرائنی باید قرار این رو مفصل بست حالا من مثال فارسی میزنم الان کسی در این حسینیه ارشاد بگه مثال میزنم شام مهمان منید غید زد کیا آقایون خانما برخی از آقایون برخی از خانما طبقه پایین طبقه بالا عزیزانی که تو مسجد نشستن کدوماشون؟ پید زده این میشه مطلق دیگه؟ اما اگر گفت کسانی که طبقه پایینن شام مهمان منه این مقید شد یا نشد؟ اگر طبقه بالایی بیاد بیه، میگه آقا من که شما رو دعوت نکرد اگر طبقه بالایی ها بگن آه چرا ما رو؟ میگن ما که نگفتیم شما ما فقط این طبقه رو گفتیم کجای قرآن گفته؟ ما کانل مؤمنن ولا مؤمنه اذا غز الله و رسوله ایکون لهم الخیره مخصوص زندگی فردی است. اما از این مهمتر آیات دیگری رو از قرآن براتون میخونم میگه آمه میگه همه جاست اون چی میگید؟ حالا برای این که ما وارد اون قسمت هم بشیم یک کمی دقیق تر بحث بکنیم در سوره مبارکه یوسف آیه شماره چهل ما تعبدون من دونهی الا اصماعون سمیتموها انتم و آبا اکم اینایی که شما میپرستید پرستید ببینید باز ارز کردم بحث دیشب با باجه های قرآنی آشنا بشیم فقط یه معنی سطحی تحت لفظی نکنیم عبودیت در فرهنگ قرآنی که میفرماد ما خلق دل جنه ول الا یعنی چی عبودیت یعنی اطاعت محص متی شدن معروف میگن شخصی رو برای خدمت به یک عارفی گماشتن رفت پیشش که آقا من اومدم به شما خدمت کنم و نامت چیست گفت آنچه خانی خورا چیست؟ آنچه تو خورانی پوشاکت چیست؟ آنچه تو پوشانی خواستهت چیست؟ آنچه تو فرمانی بنده را با خواسته چه کار؟ اون عارف قشیه وقتی که به حوش اومد گفتن چی شد؟ با من همه ی عمر روز خدا را رو اینجوری بندگی نکردم که این داره در مقابل من میکنه این بندگی یعنی اطاعت؟ لذا وقتی تو قرآن میگه لا تعبد شیطان یعنی چی یعنی شیطان رو گوش نکنید اینایی که شما عبادت میکنید، اینایی که شما اطاعتش میکنید، اینایی که شما پذیرفتید اینا نیستن الا اسماء سمیتموها اسمای بیمسمان شما این نامار رو روش گذاشتید مثلا شما گفتید این خدا شما گفتید این صاحب مکتب این صاحب اندیشه این صاحب آرا این صاحب نظر صاحب نظر و من میگه نه اینا شما این اسمار رو روش گذاشتید ما انزل الله به من سلطانن سلطان برهان که میتونه ثابت کنه و قلبه بده چی از طرف خدا در حقانیت این شما میتونید بیان بکنید ان الحکم الا لله دوستانی که با عربی آشنان میدونن این شکل بیان بیان مطلقه این الحکمه الا لله یعنی نمی شود حکمی باشد مگر از طرف خدا لذا اگر بخواد پیغمبرم حکم بده چرا حکم پیغمبر را قبول میکنیم؟ چون خدا به او این اختیار داده اگه بعد از پیغمبر امام معصوم ما حکمشو قبول میکنیم چون پیغمبر امام معصوم رو به ما معرفی کرده این الحکم الا لله پس این که مطلقه که حکم و غذا معناش یکیه دیگه اونجا ما قانه لی مؤمنن ولا مؤمنه ازالله ازال و رسوله اگر غذابت کرد یعنی اینجوری حکم داد اینجا میگه این الحكم الا لله حکم جز از طرف پربردگار نیست این الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا ایاهو ذالك الدين القیم عمر کرده اگه قرار بندگی بکنید، اطاعت بکنید، ببینید خدا چی گفته؟ بیدید سراغ خدا، حرف خدا رو بپذیرید. زالکت دین القیم، دین، اون راه، اون روشی که میتونه رو پای خودش واسق قیمه، شکست نمیخوره، نمیفته، اینه. بقیه همه، آقا یه زمانی، من وقتی که گرباچوف اومد توی تلویزیون، تو دنیا پخ شد، دیگه خیلی نگذشته دیگه همه یادمونه آقا ما اشتباه کردیم خدا رو کنار گذاشتیم من بی اختیار گریم گرفت شاید بعضی اعضای خانوادم یادشون باشن جلوی تلویزیون حالم خیلی منقلب شد گفتن چیه؟ گفتن بیاد مرحوم استاد متحری افتاده چون مرحوم استاد متحری خیلی حرص میخورد روی تفکر مارکسیستی در جوامع اسلامی می خیلی از مسلمان‌ها دارن فریب مارکسیستا رو می‌خورن این زرق و برق مارکسیستی ما مدینه فاضله درست می‌کنیم ما جامعه بی‌طبقه درست می‌کنیم ما بورژوازی رو از بین می‌بریم ما مالکیت رو یه جوری در جامعه قرار میدیم که زورگویان اقتصادی تو جامعه پیدا نشن و میدونست اینو حرفه آقا اینا اگرم بشه باید در نظام الهی بشه اگه در نظام الهی تحقق نیابه هیچ نظامی نمیتونه تحقق بده بشر اینا رو دیده بنده این ادعا رو میکنم فکر نمی کنم. یکی از شماها با من مخالف باشید در قرن بیستم کشوری در کره زمین نبود که در دفاعی از تز مارکس کشته و زندانی نداده باشه در قرن بیستم کشوری در کره زمین نبود که در دفاعی از تز مارکس و نظام مارکسیستی کشته یا زندانی نداده باشه ولی هشتاد سال هفتاد سال دوت سال گذشت اشتباه کردیم پس این دین قیم نیست اگر قرار دین قیم باشه اینو انشالله تو بروندینی بحث میکنم فقط الان سوجهش رو میگم باید نظام اینو داشته باشید نکته زریف اندیشهیست که ملا صدرها روش خیلی بحث کرده باید نظام تشریعی با نظام سکوینی حاکمه بر عالم وفق بده اگه وفق نداد نتیجه نمیده الان یه مثال به فرد میزنم اینو تو بروندینی بحث میکنم یه بحث فلسفی عمیقه بزرگان قرنه ها روش بحث کردن ولی عمل نکنیم نتیجه نمیگیریم ببینید الان من تو فرد پیاده کنم شما میخواید برای سلامتی جسم من یه نظام قانونی امر و نحی معین کنید اینو بخور اینو نخور. اینو بپوش اینو نپوش. اینو بنوش اینو ننوش این امررا نه دیگه حکمه دارید حکم میکنید قضاوت می, می بین موضوع و محمول پیون برقرار میکنید اگر با تکوین وجود من یعنی با کیفیت خلقت من هماههنگ نباشه دوام داره. مثلا شما به من بگید شما اصلا آب نخورید این با وجود من نمیسازه. من وجودم با آب احتیاجی داره. شما به من بگید که شما غذا اصلا نخور هوا استفاده مگه میشه لذا این دوام نمیاره نظام اجتماعی هم همینطوره از نظر تکوینی همون جوری که در آیات قرآن راجبه حکم تکوینی میگه ان الحکم الا لله من وقت ندارم وگرنه آیاتو جدا میکردم مثلا در آیه پنجاب و هفت سوره انعام شما باید ببینید اونجا یک بیانی میکنه بعدش میگه حکم الا لله اون راجبه تکوینه میگه تکوین عالم. حکمش جز بر مبنای الهی نمیتونه باشه لذا غذا و قدر الهی معناش همینه غذای الهی یعنی خدا در نظام تکوین عالم احکامی برقرار کرده شما نمیتونی عوضش کنی مثلا نظام قضای الهی قدر با این اندازه هماهنگ شده در تکوین عالم آقا آب ننوشی میمیری حالا من بیام این غذاب و قدر رو تغییر بدم میخوام آب ننوشم زنده بمونم نمیشه آقا میمیری تا زمانی که بشر چون بشر اینا رو لمس کرده انجام میده ولی در مسائل ارزشی اجتماعی هم این میشه غذا و قدر در نظام تکوین حالا به و قدر در نظام تشریع آقا حکم خدا اینه الملک یبغا مالکوف ما ولا یبغا مالزل اینه نظامه ولذا میگه گاهی دیر میشه گاهی زود میشه ولی این طبیعیه نمیشه با آقا نظام غذای الهی در عالم تشریع اینه فرزند دل پدر مادر رو نشکنه خیر نمیبینه آقا من بخوام فرزندی باشم دل پدر مادر رو بشکنم خیلی نمیشه این نظام غذای حاکمه بر عالم قضا و قدر و غذا اینجوری خدا قانون گذاشته بشناس لذا این عبارت رو دقت کنی تغییر قضا و قدر الهی در توان و قدرت هیچیک از ماها نیست تطابقه با قضا و قدر الهی تکلیف ماست تطابق با قضا و قدر الهی تکلیف ماست پس خودمونو با قضا و قدر الهی تطویق بدیم و این آیه چی میگه؟ تو آیه پنجا و هفت سوره انعام این الحک ایلا للا اون در تکوینه در آیه چهل سوره یوسف این الحک الا لله، این در تشریعه، لذا در رابطه با اطاعت، سرسپردن، احکامی رو بپذیرید، اون رو عمل بکنید، در آیه چهل چه میفرماید در سوره یوسف میگه اگر شما بناس مطی بشید و انجام بدید، اینجا ان الحکمو الا لله امره، الله تعبدو الا ایاهو، ذالک دین القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثرن به توجه ندارن وقتی اکثرا به این توجه ندارن جو غالب میشه غیر نظامی که خدا قرار داده و غیر قضای الهی عمل میکنن خب نتیجه اونی که خدا مقرر کرده تحقق نمی دیگه لذا خدا هم مگه تصریح نکرده انا هدینا هستبیل اما شاکران و اما کفورا. میخوای قادردان باش میخوای نباش بودی بهره میبری نبودی نمیبری. خب وقت امشب بیشتر اجازه نمیده. اجازه بدید این آیات هنوز نیمه کارمون. من فردا شب الله اگر عمری بود بحث آیه رو یه مقداری بحث آیات رو بتونم جمع بندی بکنم وارد قسمت بروندینی بشیم در های بعدی ببینیم وقت چقدر اجازه میده چون تبیین امام حسین علیه السلام رو داریم بیان میکنیم امام حسین فرمایشات بسیاری رو توی واقعه کربلا داشتند خیلی زیاد چه آیاتی خوندن چه مطالبی فرمودن چه نقل قول هایی از پیغمبر داشتند موضوع بحثی که ما با هم داریم تبیین امام حسین در رابطه با چی موانع تحقق هدف هم بیا ما ببینیم تو هر مناسبتی امام حسین بی این نکته انگشت می‌زارن چرا اطاعت نمی کنید؟ چرا گوش نمی‌دید چرا اونی که خدا و فیغمبر گفته گذشتی کنار یه چیزایی دیگر رو جاش گذاشتید جابجایی به ارزش ها یه چیکش خطبه صبح آشورای امام حسین علیه السلام اون عبارتی که هر شب دارم میخونم که سرلوه بحث ماست نامه امام حسین بود خطاب به سران بصره اونجا چی فرمود انا ادعوكم الی کتاب الله و سنت نبیه من دارم میگم چی من قدرت نمیخوام من پست نمیخوام من مقام نمیخوام من یه چیز دیگه دارم میگم من چی میگم میگم بیاید ببینید کتاب خدا چی گفته بیاید ببینید سنت پیغمبر چی گفته فان السنه قد امیتد مرد حرفای پیغمبر مرد سنت پیغمبر رو از بین بردن ولی بدعتات قد اوهیت بدعت گرفته حرفای به نام دین زده میشه که حرف خدا نیست حرف پیغمبر نیست آقا پزشک به من گفته بود اینو بخور من اینو گذاشتم کنار دارم اینو میخورم بعد میگم آقا این حرفی که پزشک زد نتیجه نداد میگه کی پزشک شما اینو بخور پزش گفته بود اونو بخور شما جابجا جا کردید این میشه بدعت در مقابل سنت ان السنة قد امیتت و ان قد اوهیت اما راه علاج چیه پس مانع چیه سنت مرده بدعت زنده شده و شما بین سنت و بدعت فرق نمیذارید اما راه چیه ان تسمع قولی و او امری اگه بشنوید ببینید من چی میگم و موتی باشید نسبت به با اونی که من دستور میدم اهدکم الاس سبید رشاد من قول میدم شما تو راه قرار بگیرید این اونجا نامه بود حالا در صبح آشورا اجازه بدید من از منبعی که است مقتل خارزمی میگه امام حسین علیه السلام وقتی در مقابل جمعیت قرار گرفت تقدم الحسین علیه السلام حتی وقفه با بالا طلق عه و, و جعلین ظره العلاس صفوف هم که ان هست سیل و و نظر ال ابنصد واغف فی سنادی دل کوفه و قال ما اوممت پیشاپش جمعیت در روایات مادرش شطوری انتخاب کردند که بلند باشه جنگجو که با شطور نمیاد با ااصل میاد خواست می که من جنگ ندارم. شطور هم گرفت بل هم باشه همه ببینن. موج می‌زد الی هم این صفحای لشکریان که انهم سیل مثل سیل داشت این جمعیت موج میزد. و نظر الی ابن سعد نگاه به ابن سعد کرد واقفا فی سنادی دکوفه پیشاپیش اون لشکریان کوفه با اینا ابن سعد ایستاده بود حضرت این جمله رو شروع کردن الحمدلله الذی خلق الدنيا فجعلها دار فناء و زوال خدا رو شکر میکنم این دنیایی که قرار داد بی هیچ وفایی نکرد چند روزی دست اینه چند روزی دست اون این زوال پیدا میکنه و عوض میشه متصرفتن به اهل ها حالن بعد حال افرادی رو که در این دنیا هستن بعضیا رو در خدمت خودش گرفته بعضیا دنیا رو در خدمت گرفتن حال و حالی میشن این عوض میشه فل مغرور من قرته فریب خور است که گول دنیا رو خورد و شقی من فتنت ها، بیچاره و بدبخت است که تو این ابتلاعات دنیا گرفتار شد، فلا تقررن نکم حاضه دنیا، دنیا گولتون نزنه فانه و الرجاء من ركن اليها خیلیا به این دنیا امیدها داشتن ولی دنیا امیدشون رو قطع کرد و تخيبوا تم امن تم خیلی ها خیلیا امیدها ها تو این دنیا داشتن دنیا امید و تمه اینها رو از اونها برید و عراقم قدج تمعتم علی امرن قد اسقطتم اللافيه عليكم دارم شماها رو میبینم اجتماع کردید متحد شدید یه جمعی تشکیل دادید نسبت به کاری که خشم خدا رو برای خودتون فراهم کنی فاعرض ببجحه الکریم عنکم خداوند نظر عنایتش شما ورداره ور داره و اهلل بكم نعمته او نقمت الهی شامل حالتون بشه و جنبکم رحمتهو رحمت خدا از شما دور بشه فنعم رب رب ربنا ما خوب پروردگاری داریم خوب مربی خدا او بلد ما رو تربیت کنه و به سل عبید و انتم اما عجب بندگان بدی شمایید. مربی کم نداره شاگرد شاگرد خوبی نیست پس اونی که قرار تربیت بشه نمیشه اقررتون به طاعه و آمنتم به رسول ثم انکم ذهفتم الى ذریته تريدون قتلهم شماها همه میگید ما مسلمونی ایمان آوردیم اقررتون به طاعه اقرار میکنید ادعا میکنید ما مطیعیم آمنتون به رسول ما به رسول ایمان آوردیم اما این کارا چیه که دارید انجام می این کجاش اقرار اطاعت الهیه؟ بعد یه آیه قرآن رو اشاره کردن لقد استغفر علیکم الشیطان فنساکم ذکر الله العظیم و تبلغکم و لما تريدون ان الله و انا الیه راجعون یعنی فاتحش شو بخونید تموم شد رفت. کدوم دین؟ کدوم تربیت دینی؟ خودم نظامی که بر مبنای رحمت الهی قرار بود شماها پیدا کنید شماها ادعا میکنید دو سه نکته دقیق نکته ای که مورد نظر امشب بنده بود یکیش این بود که آقا قرآن گفت مؤمن بشید رستگار بشید اینا اقرار به اطاعت میکنن ولی عمل نمیکنن نکته دوم اگه قرار مربی دستور تربیتی بده کدون مربی از خدا مربی تر ولی شما که تربیت الهی را اما عبد خوبی مطی و فرمان خوبی نبودید و این عدم فرمان برداری تا با کجا انسان اینجا فرمود دنیا گولتون میزنه فریبتون میده تو این فتنه ها تو این آزمایش ها چنان ور میشید خدایش بیامرزی بزرگی مثال قشنگی میزد میگفت دنیا یک سراشیبیه یخ یخبندانه که شما میخوایی با احتیاط بیای پایین سر نخوری عواملی هم گاهی حلت هم میدن حل نداده چجوری میتونی بیای پایین حضرت داره میگه این اختزای تعلقات دنیاویه و حلتون دادن ما تا زمانی که توی دنیا گول این امور رو بخوریم عبد الهی نمیتونیم بشیم وقت برای خوش آمد امور دنیایی چند روزه کار به کجا میرسه آقا کدوم منطق؟ کدوم وجدان کدوم عقل کدوم دل کدوم شرافت کدوم انسانیت ایجاب میکنه کسی که داغ دیده عذیت شده خب عزیزانشون رو کشتید جلوی چشمشون خیمه ها رو آتش زدید نعل تازه به اسب زدید رو بدنها جلوی چشمشون تازون دید زن و بچه رو تو بی این بیابونها دوان دید برای یک انگشتر از دست کسی انگوشتشو بریدید دید، برای گوشواره از تو گوش در آوردن گوشو پاره کردید، بعدم سوار بر مرکب‌های آنچنانی کردید تو بیابونها دوان دید حالا این یه دختر سه ساله باشه، حالا خواب بابا رو دیده دلش به درد اومده، بیدار شده. اما جان بابام اینجا بود، کجا کجای منطق حکم میکنه؟ سر بریده باباشو بفرست جلوش؟ یعنی بشر تا اینقدر میتونه. شقی بشه پس به سل عبید انتم شما عجب بچه های عجیبی بودید دختر سه ساله عبی عبدالله هی. عجیب به بابا علاقه داره امام علیه السلام در همه شعون امامه، تو محبتم امامه، تو رحمتم امامه، تو لطفم امامه، تو همه جهات امامه. لذا معلومه که این بچه چه علاقه به این پدر پیدا کرده باشه، حالا از عصر آشورا که بابا رفته دیگه بابا را ندیده. حضرت زینبم علیها احساس تکلیف و مسئولیت میکنه یه جوری بتونه دیدید ماهام گاهی تو اینجور به بچه ها میگیم بابا مسافرت رفته منظورم مسافرت معنویه سیر الاللهه پیش خدا رفته بابا رفته سفر بابا رفته پیش خدا فلان تا اون شب تو خرابه شام دختر خواب دید بابا رو. یه وقت از خواب بیدار شد امه جان بابام اینجا بود الان شروع کرد و ناله کردن. چنان تعثر این بچه شدید بود که همه افراد در آن خرابه به گریه دادن خرابم کنار کاخ یزیده، نیمه شب یزید از خواب پرید این سر صدا چیه؟ دختر ساله ابی عبدالله خواب باباش دیده بهانه بابا رو گرفته و خواسته رو براش بفرستید سر تو طبق گذاشتن، روش رو پوشندن آوردن شاید دمه در زینب سلام الله علیه ها اصرار میکنه شما رو به خدا این سر جلو بچه نفرستید گفتن ما مهموریم سر آوردن چشمان رو به این ظرف افتاد گو جان من کی غذا خواستم گفتن اونی که تو میخوای داخل اینه وقتی که پردر رو کنار زد سر بریده بابا رو دید لباشو به گلوی بریده بابا گذاشت شاید طبق نقلی گفته باشه بابا باباجون میدونی چقد و کتک زدن صلی الله علیك یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بغیث وبقية الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم